بسم الله الرحمن الرحیم کتاب السید و کتاب سید و ذبائح سید از ساده گرفته شده سید مستر ساده هست خودش مستر صید و برمون شکار اطلاق شده بر مسید هر حیوان وحشی که خوردنش حلال باشه ذبائح که هم جمع ذبیحه هست معنی مضبوع ضب شده. بر کتاب این احکامات رو توضیح میده و على علدکتیی و هر حیوانی که توانایی حاصل شد بر ضبه حش بینید حیوانی که تو به او دسترسی داری حالا چه اهلی باشه چه شکار باشه فرقی نمیکنه و معقود دا رو قدر که قدرت حاصل شد ذکتیی، بر زبح فذكاته في حلقه ولبتي پس زبه اون حیوان در حلقش هست یعنی با ل... بالای گردنش ولبته پایین گردنش بله و ما لم در، پس او گردن زبه میشه زمانی که حیوان در دسترس بود در اختیار بود اما و ما لم يقدر على ذکاته حیوانی که فیل مجهوله آلم یقدر حیوانی که توانی بر ذکاتش نبود یعنی تو نمیتونی اونو بگیری فرار میکرد یا دور بود شکار بود یا پرنده بود که در هوا بود خلاصه توانی این که گردنشو ببوری نبود و ما لم يقدر على ذکاته و حیوانی که توانی بر ذبهش نبود فذکاتو اقره زکات این حیوان عقرش هست یعنی کشتن با جرح کردن با زخمی کردنش با پاره کردن بدن و ریختن خون با سر شمشیر مثلا اونو بزنی یا با تیری که تیز باشد و سوراخش کند خلاص فزکاتو اقره زکات حیوانی که توان ذبهش نیست اقرش زکاتش یا زبحش زبحش با اقر کردنش هست یعنی کشتن اون با زخم زخمی کردنش با پاره کردنش و ریختن خون حیث قدر علیه هر کجا که البته توانی اون داشت از عقب بود از پشت حیوان بود، از کمرش بود، از گردنش بود، از سرش بود، هر کجایی کتوانش داشت. پس خلاصه زبینه که حیوان در دسترس بود، در تسلیم تو بود، گردنش بریده میشه. <تصفيق> اما اگر نه، خب چیز تیز، سرتیز، اونو زخمی میکنی هر کجا که ممکن بود و کمال ذکاتی 4 تاشه اما کمال ذبح 4 هست کامل بودن ذبح در با 4 چیز حاصل میشه یک قطع الحلقم حلقمش بریده بشه حلقم این مسیر نفس کشیدانشو میگند پس کمال ذبح در حلق در قطع حلقوم یعنی مجرای تنفسیش و مری و قطع مجرای غذایش یعنی زمانی گردن برید میشه اینجا های مختلفی تو این گردن هست یکی مال نفسش یکی مال غذا و آبش مجرای غذا و آبش برید بشه دو، سه و 4 و و یعنی و ودجین قد بشه سه و چار ودجین دیگه چه هست؟ اینا دوتا رگ هستند که در کناره های گردن وجود دارند زمانی که بریده بشه مشخص میشند دورو بره خلقوم هستند راه تنفسی حیبان بله و المجز امین همشه ان. البته و چیزی که اگه اونا رو بریدی زبح انجام گرفته کافی هستند دو چیز هستند یکی قطع حلقومش یکی قطع مریش یعنی راه نفس و راه غذا و آبش که بریده شد خلاص زبح انجام گرفته شما همون ابتدا که چ... کار داروی گلوش میگذاری و میبوری رگای بریده میشه این بعد از اون میاد مریش حلقومش که بریده شد مریش میاد راه اون غذا و آبش این دوتا که بریده شدند خلاص کار تمامه اجزا میکنه این زبح کافیه این زبح. والمجزئ ويجوز الاصطياد بكل جارحه و وجائز است سید کردن شکار کردن با هر جارحه حیوانی رو میگن که اون جرح میکنه اون شکار رو یا با نابهاش با دندانای نیشش یا با مخلبش با چنگالش بله پس جایز از شکار کردن با هر جارحی یعنی حیوانی که شکار رو زخم میکنه جرحش میکنه با نیشاش یا با چنگالش منصبه از پرندگان باشه اون معلمتی آموزش دیده باشه تعلیمیافته باشه اون حیوان شکاری حالا چه حیوان باشه چه پرنده فرقی نمیکنه ولی معلمتین آموزش دیده باشه. من از سبا از درندگان رندگان چارپا و من جوار حطیر یا از جرح کنندگان پرنده. فرقی نمیکنه این جارحه یا از حیوانات چارپا باشه یا از پرندگان باشه. چارپا مانند سگ. از حیوانات در مانند سگ و از پرندگان هم مانند شاهینو این چیزها پس جایز از شکار کردن با این چیزها با حیوانات این حیوانو آموزش بدی به بوسیله شکار کنی و شرایط و تعلیمها اربع علت شرایط تعلیم این حیوان شکاری چار چیز هست یک ان تکون اذا ارسلت استرسلت شرط اولش اینه زمانی که فرستاده بشه برای شکار استرسلت بره صاحبش که اونو اشاره کرد که حمله کنه به اون شکار این هم حرکت کند و حمله کند و اذا زو جرت انزجرت شرط دومش اینه زمانی که نگه داشته شد بیس دیگه نره و زمانی که نگه داشته شد دیگه نره یعنی موقعی که صاحبش اون حیوان شکاری رو گفت بیست بیست و اذا قتل سیدن لم تاکل منه شیئن شرط سف همه تعليمینک زمانی که چیزی رو کشت شکاری رو کشت لم تاکل منه شیئن چیزی رو از اون حیوان نخورد چهار شرط چهارم رو من و این یتكرر ذالک منها این کارا تکراری باشه یک بار نباش. اخیبا یک بار نمیشه قضاوت کرد که این حیوان واقعا از روی آموزش این کارا رو کرده. اما اگر به شکل تکراری این کارا رو کرد و جواب داد یعنی بهش گفت برو رفت نرو نرفت چیزی رو نخورد اون موقع دانسته میشه که این از به خاطر اون تعلیم یافتگیش هست است شرط چهارمش همین است که این کارا رو تکرار بکنه بله با تکرار این شرط اولو انجام بده و موفق در بیاد فاین عدمت احد الشرائط اگر یکی از این شرطها موجود نبود لم يحل ما اخذته حلال نیست ان چیزی را که این حیوان شکاری گرفته الا ان یود را که مگر در یک صورت مگر این که اون حیوان سید اون شکار شده زنده یافته بشه و فیو ذکا بله اون موقع به خاطر شده دیگه جایزه. بس اگر این چارتا شرط و حیوان شکاری داشت حیوان آموزش دیده داشت شکاری رو میکنه، کنه ولی این که اونو بکشه خلاص خوردنش جایزه اما اگر یکی از این چار شرطون نداشت جایز نیست مگر اینکه اون حیوانش شکار شده زنده گرفته بشه و بشه و تجوز و به بكل ما يجرح الا بالسن والظفر و جایز است ذبح کردن به هر آنچه که خون رو جاری میکند جرح میکند مگر با دندان و ناخن با دندان و ناخن نمیشه ذبح کرد یعنی اگه دندانی تیز باشه یا ناخن این جایز نیست با چیزای دیگه بله سنگی تیزی باشه آهن تیزی همین کارد باشه با چیزای دیگه خلاصه جایزه وتحل و کل مسلم و کتابی حلال است ذبح کردن هر مسلمان و اهل کتاب یهود و نصارا ولا تحل ذبيحه مجوسيا ولا وثنيا وجائز نيست ذبح كردن مجوسي و پرست پس ذبحه هر مسلمانی جائز است و اهل کتاب ذبحه مسلمان با اهل کتاب جایز است و ذبحه مجوسي و پرست جایز نیست وذكاته الجنين بذكاته امه الا ان يوجد حيا فيذكى ذبح كاردن جنين كدر شكم ماده الحيوانه ذبح وبابسه با بذبح مادهه است ماده كذبح شد خلاص اون هم حلال مشي مگر در یک صورت الا أن يوجد حيا مگر اینکه زنده یافت بشه فيذكى قدرين حالت ذبح مشي مثلا زماني كه گوسفندی ضبه شد بعدا شکمش رو پاره کردن دیدن بچه در شکمش هست قابل خوردن است خلاص این با زیبه مادر زیبه شده یعنی منظور اینه که حلال خوردنش مگر این که زنده باشه خب اونجا دیگه نیاز به زیبه داره اما اگر زنده نبود و مرده بود خلاص حلال خوردنش و ما قوت چون حدیث داریم که زیبه جنین با زبه و بسه به زبه مادر هست مادر که زبه شد اون حلاله و ما قطع من و آنچه که از یک حیوان زنده قطع بشه فهو ميتون اون مردار هست خب این یکی از فلسفه های بسیار خوب شریعت اسلام اگر این حلال میشد شد بسیاری از حیوانات تعذیب می پس هر چیزی که از حیوان قطع بشه بسیار پاش قطع بشه خلاص این مرداره دیگه خوردنش جایز نیست فهومی میتون مي این قطعه این تکه قطع شده از حیوان مردار هست الا شعور المنتفع بها في المفارش و مگر موهایی که نفع برده میشه از, از اونها در فرشها و در لباسها فصل احکام الاطعمتی فصل بعدی در رابطه با احکامات اطعمه هست خوردنی ها و کلو حیوان استطابته العرب فهو حلال هر حیوانی که عرب اونو خب این درسو جدا جداگانه بعدا بخونیم